توکل یک صفت است که نمیشه کسب کرد صفت نیست که با اختیار انسان بر خودش پیدا کنه توکل بعد از ایمان و شدت ایمان پیدا میشه اتکای به خدا ادم پیدا میکنه ایمان یعنی اعتماد یعنی تکیه کردن به خدا وقتی تکیهش به خدا زیاد میشه اون حالت توکل میاد از سپات اکتسابی نیست مثل رضا میمونه مثل اخلاص میمونه مقدماتش دست خود آدمه اما اعطاییه خدا باید اون حالت توکل رو به انسان ارزانی کنه که ما او رو وکیل خودمون قرار بدیم یه اعتماد خاصی میخواد که خدا اینایت میکنه